روی خط تلفن جناب علی آزاد داریم که با سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در دانمارک هستند و همینطور تظاهراتی امروز از جانب کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در کپناک و همینطور کانون پوینده در کپناک میزبانی این برنامه هستند تظاهراتی در حمایت از زندانیان سیاسی و همبستگی با خانواده جان باختگان و پشتیبانی از مبارزات و اعتراض مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری اسلامی در ایران تظاهرات امروز ساعت دوی بعدازظهر شروع میشه تا ساعت چهار مقابل سفارت اسلامی در شهر کپناک جزیات بیشتر و همکنون از آقای علی آزاد می‌پرسیم آقای آزاد سلام و صبح بخیر میگم به شما در شهر کپنهاگ منم به شما و شنوندگان شما سلام و صبح بخیر میگم امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید خسته نباشید هفته گذشته روز شنبه تظاهراتی بود مقابل سفارت جمهوری اسلامی از جانب شما که برگزار کننده اصلی بودین می خواستم راجیب امروز بعد از دار صحبت کنیم و بعد می پردازیم به شنبه گذشته هم تظاهراتی که مقابل سفارت بود چه گذشت؟ بله. من به مقدمت بگم که این تظاهرات فقط از طرف گروه ما نبود بلکه این از طرف گروه مختلف چپ و شوشه و کمونیست و دموکرات و آزاده خواهان ایران بوده ما اونبانه دو تا گروهی بودیم که خب باعث در سازماندهی و برگزاری و نقش داشتیم و امروز هم همین هست به همون روال سابق هست ما دو, دو گروه هستیم که درش وسلو نقش داریم و تلاش می‌کنیم که به شکل خوب و دوستانه برگزار بشه شنبه <تصفيق> گذشته تزاراتی که مقابل سفارت بود چگونه بود و استقبال چجوری شده بود از تظاهرات؟ تظاهرات بسیار خوبی بوده به خصوص اینکه تایفای زیادی در شرکت کرده بودند و گسترده بوده جمعیت شاید دقیقاً نمیتونم بگم چقدر بودن اما حدوداً 300 نفر برابر شده و از روی اینکه خب کسانی که اومده‌اند عمدتاً به سلا بچه های این بودن اومدن نسل جدیدی بودن اومدن در این حرکت شرکت کردن و همه با شور و شوق به حمایت و به همبستگی خودشون رو با مردم ایران و جنبش اعتراضی در داخل ایران اعلام کرده بودن شعرهای زیادی رو که همه شعارای داخل ایران بوده رو به سلا فریاد بیزادن. و بسیار پرشور و حرارت بوده و تا حدود دو ساعتی دوام ادامه داشت در خصوص سرانجام با شکل برورم از آرام معلو طرف کردند رفتن و برشا گروه مختلفی هم درش اطلاعی ها و ایرام به خصوص این از طرف گروه ها و جهجانات دانبارکی خیلی مورد استحوال و رسلا پشتیوانی قرار گرفته یعنی که وقت هم بوده امکامی نبوده که ما با تمامی رسلا جریانات و گروه ها و انگیوهایه که نسبت به مسال ایران و نسبت به رسلا حقوق کارگران حقوق مردم ایران حساسیت بیجایی دارن و سال سال منتظر چنین روزایی بودن ولی با همه اینا از دو نفر اومده بودن بخش کارگری بوده و بخش کومونکو بناب بوده به اضافه از اینترنشنال فراهم بوده از اصول بوده از گروه جوانان سوسیالیست بوده و از گروه دیگه یه مطلب دیگه اومده که ترسه کنن یه مقدار ما اشکالات فنی و تکنیکی داشتیم در رابطه با صدای اینه فکر نمی کردیم اندازه مورد استقبال قرار بگیرد توی نوایی سرز زم سوری اما خب در صورت اومدن حضور داشتن در لامن بستگی کردن به آرزوی موفقیت و پیروزی برای مردم ایران داشتن و این بسیار ارزش و به صلاح امیدوار کننده هست لگه در روزه در ایران علی جمهوری اسلامی شعار اسلامی شنیده نشد برخلاف جنبشای قبلی شعار مردم مردم مستقیم علیه فساد اقتصادی گرانی بیکاری و علیه مقامات جمهوری اسلامی و خود نظام اسلامی رو مورد هدف قرار داده بودند این تفاوت اصلی هست نسبت به تظاهراتهای که چند سال پیش در ایران صورت می گرفت. نظر شما چی هست؟ بله شما به درست اشاره کردید یعنی شاید نزدیک سی سال هست که آدم بیشتر از ابتدای سال 5 و 6 تا الان در صورت بیش از هر چیزی این مسئله اسلامی بودن یک بچه اعتراضات به در ایران اهمیت داشت و همواره همین این مسئله سباب به اصطلاح عقب‌موندهگی، سبب, عقب سبب پیچیده شدن و به اصطلاح استقرار نوع ارتجاء در لابلای خواست‌ها و مطالبات دموکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم ایران بود. خوشبختانه این قاب شده و از این گذشت و همونجوری که شما اشاره کردید به درست در این به اصطلاح تحولات اینا نقشی رو نداشت و این نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای کل منطقه آغازی هست یک تاریخ برنگ دیگه این و شاید به طبان گفت که پایان جنبشای اسلامگراهی هست که زیر نزدیک نظریک نیم غرب نه تنها ایران بلکه خاور ایرانه رو تحت تحصیل قرار داده و جنبشای ارتجایی رو سر بارد رو برده که نتیجه اون توی افغانستان ایران عرام سوریه می بی همه این جایی که می بینیم اجوم این جنایتکارا اجوم این لاجمش های ارتجای کل صللا شرازی جامعه را بر هم پاشید. از این نظر بایدی به حال می گرفت و امیدواریم که، برق, برق, برق, برق, برق جدید از تاریخ خوشوده بشه و این پایان جنبش های مذهبی اسلامی باشه و جنبش های سلاح مترقی، آزاد بیخانه، دموقراتی مطالبات سلاح مردمی در سطح وسیطر و بسترده مطرح بشه و انقلاب به قول معروف زبان خودش با مطالبات خودش با نیازهای خودش جواب ده. در کنار این شعارهایی شما مطلع کردید به نظر من بسیار درست بود به یه چیزی که باز هم بیشتر از همه اینا جستگی داشت شعار مرد بر لیکتراتوری بوده که خب این هم به نوعی به نظر من بسیار باهمیت هست جنبش ایران، جنبش خابر میانه، جنبش کشورای اصلاً این جانس و عمر قدیم تا به کشورهای کشورای زده این جنبش و این مطالبات نهوری هست و خب بر مشاهده دیکتاتوری هم مختص فقط جمهوری اسلامی نبوده در زمان شاه بوده فقط به مختص رژیم سرطاوی هم نبوده سابقه تاریخی در ایران داره و به نوعی از آغاز مشروطیت تا الان به مسئله دیکتاتوری و حاکمیت استبداد فردی در ایران تحت نبایی ولی فردی باشه یا بادشاه باشه یا هر کسی ای باشه رو مورد ورد برار گرفته و این هم به نوعی نشو گفت که تاریخ جدیدی هست که ادامه سه چهار دوره از انقلاب ایران رو به همیه بیزن سال آخر رو میپردازم به آیت الله معمود هاشمی شارودی اراقی که برای درمان بیماریش به آلمان سفر کرده بود و چند روز گذشته سرصدایی در شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد که ایشون علیرغم شکایت‌های مقامات سیاسی در داخل آلمان از جمله حزب صبسا و شکایت های مختلف ایرانیا، ها از ایشون به داستانی آلمان یکی از افراد سیاست مدار به سبز آلمان گفته که آلمان آسایشگاه ناقصان حقوق بشر نیست هر کسی در مملکت خودش مرتکب جنایت میشه و برای درمان خودش میان لم میدن با عنوان آسایشگاه ازش استفاده میکنم و یا درمان فرار کرده ایشون از آلمان آقای شارودی رئیس قوه رئیس تشخیص مثلت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود اینا ها و آیت در داخل مردم تشویق تشخیص که برای شفا شفای بیماران به امامزاده ها مراجع کنند اما خودشون برای مالیجی به گرانترین ها خارج از کشور سفر میکنم. راجع به این میخواستم صحبت کنم وقتی تونا زیاد نمیگیرم ببین شما درست از زیادی یعنی من در... نمیخوام بگم فقط آهیت لاش یا همه اینا اینا برای کوچکترین بیماری خودشون نه برای حتی مریضی هایی که اساساً در ایران قابل مالجه هست و سالهای سال بوده مثلا فرض کنید که در رابطه با این که بیماری های بسیار اقتدائی خودشونو در خارج از کشور در بهترین بیمارستان ها به مراجعه میکنند این چیز جدیدی نیست هست با بارها بارها این مسئله سلافاش شده و شانگید اولین بار نیست که برای درمان بیماریاش به خارج قبل از اینکه به به در آلمان این رو شروع بکنه در لندن چند نوبت به مراجعه کرده و اونجا بستری بوده اینا حتی برای بباسیلیشونم که به خارج از کشور تو بهترین بیمارستان های اروپا مراجعه میکنن اما برای مردم چون همه بیماری‌ها به قول شما صدقات و خیرات و نمیدونم نظر و بین امامزاد و اون امامزاد دخیل بستن و بعده و بعده میدنم دیمونجا شفا پیدا بکنن. اینا خب در صورت از اقتدام بود اینها آدمای های و شعیابی هستن. کسی اینا نمیتونن انکار بکنه. همه اینا زیر نظر بهترین امکانات به مثلا زندگی میکنند، و زندگی بسیار اشرافی را در کنار این به مردم میگن که بایستی زندگی فقیرانه و عرفانی و اینو وده می دارد. اینا چیزی جدیدی نیست و چیزی که در این رو به قول معروف شده یک مقدار توجه ایرانی ها رو به این مسئله جلب کرده همین مسئله هست که آیا این جنایت کارا این دارن که بیان پرت پوشش این که مریض هستن خولت سن دارن از امکانات رو استفاده بکنن برای خودشون یا نه این بحث بسیار به جایی بوده افکار و رو به نوعی متقاعد کرده که اینا پرت این پوشش نمیتونن برای خودشون بسیارا فضای امنی ایجاد بکنن این حقا به سلاح اقراض مردم ایرانیان بوده که توی آنبورد و جای دیگه در رابطه با مسئله شارودی مطرح شده و این سراغاز این هست که اینا هر جایی رو که بخواند که بسیلا برای کار خودشون، برای مداوای خودشون، برای تفصیل خودشون، برای سوچرانیشون حاضر شدن با بساطی اینا رو به هم ریف اینا از پول امکانات مردم هست به خصوص چی از مردم دقیق میده. اونسان های ساله بر طبل این فاسد بودن غرب می کوبن بر سر, سر اینکه دانشگاهی دانشگاه غرب جز فساد تبایی چیز زیر و آموزش نمیده دارن می حتی برخی از رشت های تحصیدی رو به صلاح از گروس دانشگاه پاک می اما آزاده ها خودشون و بچه خودشون همه رو در دانشگاه اروپایی با ضرب پول لابیگری لا اینا دارن برای به دست پا میکنن که اینا بتونن اونجا مدارکی رو در تاییه تدارم ببینن در نتیجه این حالت دوگانگی و این اخلاق و صلاح برای مردم شناخته شده بود اما کسی به این مسئله و صلاح اهمیت رو نمیزد. امروز این اهمیت برای مردم روشن شده که نبایستی به این و واردگران زندگی به این دوزدان و چپابولگران این سرکوبگران اجازه داد که جای امنی رو برای خودشون پیدا بکنند و این کار به صلاح سیاست مدار سبز آلمان به نظر من بسیار کار سنجیده و یا به عبارت دیگه مردمی تر بوده و این مسئله مطرح شد در کنار این همین جا هم توی دانمار هم این مساله در رابطه با اینکه که دولت دانمار در زبان مسال ایران واکنش به صلاح روشنی رو نداشته موزگیری به صلاح واضه تر اینکه این بتونه این سرکوبا رو محکوم بکنه اینا رو نداشته اینا خب یکی از اعضای حضب سوسیال دموکرات در پارلمان نامهی رو تنظیم کرده و دو روز پیش رو به وزارت امور خارجه برده و این اعتراض رو به شکل رسمی از طرف یک اعضای حضب سوشیال دموقرات پارلمان مطرح شد که خب این هم به نظر من جای خوشبختی هست آدم میتونه از این امکانات استفاده بکنیم امیدواریم که اگر که این جنایتکارا اینجا سرشون پیدا شد و برای هر مسئله یا را فقط به نیست مسئله تجاری هست، مسئله سیاسی هست مسئله فرهنگی هست اینا اینجا و صورت پاتوخ اینا هست گاهگاه میان اینجا و میشه از این طریق به این مسئله اعتراض کرد خیلی سپاسگزارم آقای علی آزاد که امروز میدونم سرتون شلوغه که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتیم خیلی سپاسگزارم. ممنون هم از شما. من خود از شنوندگان شما امیدوارم که روزگاری بهتری برای شما و مردم ایران خوش.